بسم الله الرحمن الرحیم تبعو کالذی نزل الفبخان علی عبده ليكون للعالمین بنام خدا که بیاندازم نحبان محاویت با رخ نست زوال نافذی با فربرکت از زوتی که فرقان را بر اشنا و کرد تا جهانیان را انزاغ الذي له ملك السماوات والأرض ولن يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا خدا بان ديك وكمات بمورد شتى آسمان هاو بتنين أسانهو با خود انتخاب نكارت و شریک در حکومت و مولیتیت ندارد و همه چیز را آفرید و دقیقا اندازه گیرینمون و اتقضوا تا يخلقون شیئا و خسیم برغا ولا نفعا ولا موتا ولا ولا آنها غیرت خرابان، معبودان معبودانی را برای خود برگزیدند معبودانی که چیزی را نمی آفرینند بلکه خودشان مخلوقند مولک جیان و سود خود نیستند و نه مولک مرگ و حیات و رساخیزشاند وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراء هو أعانه عليه قوم آثرون فقد جاءوا بمن وزروا بكفرن گفتند این فقط دروغی که او ساخت با گروه او را بر این کار یاری دادند با این سخن زون دروغ بزرگ را مرتکب شدند. و گفتند و گفتن این همان افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده و هر صبح شام بر او املا می شود. قل انزل الذي علمه السر والغطاء في السماوات والارض ان كان غفور رحيم بجزات انزال کرده است که اسرار آسمان ها و زمین را میداند او غفور و رحيم بوده و ها و, و, و گفتند چرا این رسول غذا خورده بود؟ در بازارها راه میرفت. چرا فرشته بر او نازل نشده که همراه با مردم را انتظار کند او خورد و الی او تكون له دمنه یا منها وقال الغالون ان تتبعون الا رجل من یا جانجت آسمان برای او فرستاده شود یا باغی باشد که کلیوی آن بخورد و امرار معاش کند با گران گفتند شما تنها از انسان مجنون پیروی میکنید او چون به طلبو لک الامثال فضلوا فلا مثال زدند و گمراه شدند آنچنان که قدرت پیدا کردن راه را ندارند تبا و الذی اجعل لك قيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار واجعل لك قصرا زبن فضير با بزرگا خدایي كه اگر بخواد برای تو بهتر از اين میدهد باغ هاي كه از ديره درختانش نهر ها چري باغشت و براي تو قصر هايي مجلل قرار ميدهاد بلکه اونها بل قیامت را تذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را انکار کند آتش سوزانی مهیا کرده ایند اذا را اکم من مکان بعید سنعو لها تغیبا و زفیرا انگام که این آتش آنها را از دور می بیند وحشت بخشتناک و خشم آلود او را که با نفذ دادن شدید همراه می شنبد و اذا اولکو منها مکانا هنالك با همگامی که در مکان تنگ به محدودیت از آن افکنده می شوند در حالی که در غل و زنجیرند فریاد با ویلای آنها بلند می شوند امروز یک بار با ویلا نگوزید بلکه بسیار و ویدان کرده اید قل اذانک ام جنت القل دلتی وید المتقون کانت لهم جداء و مصیرا بگو اوگا این بهتره یا بهشت جابدانی که با پرهیز کاران وعددار شده بهشتی که پاداش اعمال آنها و قرارتاه شانه لهم تیهانا یشاؤن قالدین کان علی ربی بخواهم در آنجا برای آنها فراهم جاودانه در آن خواهند ماند این بعدهی مسلم که پر بعض بر عهده که و ما یحفرهم الله بخاطر بیاور روزی را که همه آنها و معبودانی را که غیرت خدا پرستش می کردند جمع می کند و به آنها می گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود گمراه شدند؟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 آنها در پاسخ میگویند منزدهی توی برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیای برگوتینی ولی آنان و پدرانشان را از ها برخوردار نمودی تا این که آنها جای شکر نعمت یاد را فراموش کردند و افلاف شدن فقد کذبو کن بی فما و من من کم این معبودان شما در آنچه میگویید تکذیب کردن اکنون قدرت ندارید عذاب الهی را برطرف طرف یا از کسی یاری به طلبید هر کس از شما ظلم و ستم خوند عذاب شدیدی. و او میچشاندید وما ما ارسلنا قریبكن المسلمين، إلا إنهم لا الطعام و في الأسواق، وجعلنا بعضهم لبعض فسنا رسولان را پیش از نفر استادینه، مگر اینکه و در بازارها راه می رفتند و بعضی از شما را و سیله امتحان بعد دیگر قرار دادیم آیا سعب شکل باویی می کنی؟ و پبرکار تو بسیر و بینا بوده بحث و قال الَّذِنَّ لَا يَرْزُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَةُ اَوْنَا رَبَّنَا و آنها که امیدی بلقای ما ندارند و رساخیز را انکار می کنند می گویند چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند و یا فربردگار من را با چشم خود نمی بینید آنها در باره خود تکبر برزیدند و تخیان بزرگی کردند يوم يرون الملائكة تتلابس غياوما يوم يجل للمجرمين ويقولون حجرا محظورا امر روضت كبرستكان جنان روضت بشاره المجرمين ما خطب بامينك جان ما رامنك ما را ماعطابي ذاهجون الى ما عمر جعلناه هذا أمم سورة وما بشرى أعمالك أنها أنجم بدان ميربي بهم راهن شن تراو تخبر راكان تا در, در حبام يكنا أصحاب الجنة يومئذ قوم متقوى وأحسن مطلا بيشان ترانو قرارگاهشان از همه بهتر و استراحت نیکو تره <تصفيق> و بخاطرها بر روزی را که آسمان با عبرها از هم شکافت می شود و از پرشتگان ناکن هل منت یوم این حق من رحمان و تانه یوماً و سافرین عثیرا حکومت دران روز اصحان خدا بند رخمانم وان روز روز سختی برای كافران خواهد بود و یوم عبدالوانو و بهخاطر بیاور روزی را که دست خیش را از شدت حسرت به دندان و میگوید ای کاش با رسول خدا راست برگزیده بودم ای وای بر من کاش فلان را دوست دو دو خود انتخاب نکرده بودم لقد اضلنی عنی الذكر بعد وكان <تصفيق> او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد ازام که آغاکی به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه مخدول کننده ای انسان ساخت فَقَالَ الْغَسِيَ رَبِّ اِنَّ قَوْمُ اتَّقَدُ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْزِورًا از قرآن دوری جستان وَتَذَلِكَ دَعَلْنَا لِكُلِّ و تفاد ربی که و نفیرا در این گناه برادی هر قوامبری دشمن از مجرمان قرار دادیم اما همین بحث که خدا حادیم و یاوری تو و خالن لبین کفرو علم به خاصران گفتن چرا قرآن یکجا جا بر او ناظر نمی شود این به خاصر آن است که قلب سرا محکم داری و آن را فدری جنب بست خاندی و لا یکون تب نفلی الا جئنا تبی و احسن تستیر آنها هیچ مسئلی برای تو نمی مگر که این ما حق را برای می بحث با ده تا الذين آنها که در صورت هایشان سوی جهنم محشور می با محل را دارند با کمرا ترین القول دار. ولقد کتاب آسمانی دادیم و جرا. ما به را برای کمک همراهش کاختیم. فَقُلْنَا نَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ این قوم که ازاتمارا تصی کردند بروید و ما شیدیم آنها را در هم کوبیدیم و نابود کردیم وقومنا قوم لم ما تزبد نسل اغرقناهم وجعلناهم کردند واعتبرنا بذلك و اللما بقوم درس عبرتی برای مردم قرار داشت و برای فکر کرن عذاب در نوعی طراحت و آدم و سمود و اقعاد و غفت و قرون بین زال که کسیرا همچنین قوم آد به سمود به اصحاب و رفت گروهی که درخت سنوبر را می پرستیدند به اقوام بسیاری زیگری را که در این میان جودند حلاف کردید و کلن بردنا لگون امدال و کلا سبرنا با هر یک از آنها مثال ها زدیم با چون سوده ندارد هر یک از آنها را در هم شکستی و سلام کردیم و مزونه مزونه آنها از کنار شهری که باران شر یعنی باران از سنگ آسمانی بران دارید بود گذشتند آجا آن را ندیدند آرو دیدند ولی آنها برستاخی ایمان ندارند و اذا و آیا که انتخابونت ایلاهوه هن آهذاالذی باعث الله رسوله. با تنها او با باج استهزال جسمی میکرند. آجات این کسی که خدا او را با عنوان رسول مباآذ کرده. اینکه دلیلونا علها. و سوف یعلمون العذاب من اضل تبیل بیگو من نزدیک بود که ما أجر نمي نمي. كون را اثر سش شخرایان ما و گمراه خواهد اگر آن استقامت نمی کند مگر چون عذاب را ببینند بیدرنگ می فهمند که کسی گمراه خواهد أرى أنت من استخد إلهه هواه أفأنت تفور عليه وكيلا أعيان كثيرا ديلك هذا النفط خيش رام معبود خيش كرت أعيان كثيرا داني كذا من رهوي أو شديد أم تحسب أن أثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأمعاب بل هم اضل سبیلا کمان می بری اکتر آنها می یا می آنها فقط همچون شهار سالجانند بلکه گمراه تر علم تر الى ربك كيف ولو شاء آیا ندیدی چه کنه پردرگارت را گسترده و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد سپس خوشید را بر وجود آن دلیل قرار تابیم سپس آن را آهسته جمع می وهو الذي جعل لكم الميل لباسا و النوم تباقا و جعلن مهارا نشورا او <تصفيق> ذاتي استشبرا برايش مولباس قراداد و رود را موجه حركت و حياة وهو الذي أرزل بين وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا با او ذاتي اسکباد هارا بشارت دراني تیش از رحمتش فرستاد آف من آبی طاق کنن دا نغتد کردین لنحيه به بلدة ميتا بل خلقنا تا با وسیلی آن سرزمین مردارا زنده کنیم و آن را برای نوشیدن در اختیار مخلوقاتی که آفریدئین چهار تاوین و انسان بسیار بکراریم و ما این آزاد را به صورت های گوناگون در میان آنها قرار دادیم تا متذکر شوند، ولی بیشتر مردم جز این کار و کار کاری نکردند و اگر میخواستیم در هر شهر و دیاری سیانبری می فرستادیم ترى الصع الكافرين وجادلوهم به جهادا كبيرا اطاعت با واسطه قرآن با انها جهاد بزرگی بنما وهو الذي مرد البحرین هذا عذب راومننوزبه او ذاتیست که دو دریا را در کنار هم قرار داد یکی گبارا و شرین با دیگری شور و تر با در آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند گوی هر جت و دور باد بانتی نه او والذی خلقنا الماء بشرا فجعله منسبا وضهرا وكان ربك قديرا <تصفيق> او تاسئ اب انساني را آخري او را نصب با سبب قرار داد تو هم با و یعبدون من دون الله ما لا ولا يضرهم على آنها غیر را میپرستند که نه به آنها سودی می رساند و نه زیانی و کافران در برابر پربرگارشان اشتیبان یک دیگرم و ما أغسلناك إلا مبشرا و نذيغا ما ترى جزب انبان بشارة ذهن دا و انظار كنن دا نفر السعوذين قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يستخذ إلى ربه تبيلا بيقو من در برابر إبلاغي الأولين گونه پاداش از شما مطالبه نمی کنم پاداش من این است تکتانی بخواهند راکی به سوی پربعه دارشان برگزینند و توتل علی الحیمهی الذی لا یموت و تبده بحمده و کفابهی بزنوب عبادهی باستا با بر خدا کن که هرگز نمیرد با تسبیح و حمد او با جای و همین بس که او از گناهان بندگانش او گا <هضحي> الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في ثم عَلَى العرض. الرحمن فسأل اوست که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنها در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستقلی شد. او رحمان است، پس در مورد او از شخص آگاهی دارد. و وَمَا لِمَا به هنگامی که به آنها گفته شود برای خرابند رحمان سیده کنید میگویند رحمان چی؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. ما برای چیز سیده کنیم که تو به ما دستور می دهی این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزده می شود. جابدان جا با جَعَلَ السَّمَاءَ آن خدایی که در آسمانها ها برج و در میان آن چراغ روشن و مالک نور بخش آفرین او بالله من بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی انداز نحبان نهاویت باره و هو الَّذی جعل اللیل و النهار خلفت لمن اراد ان یذ ذکر او اراد شکورا او ذاتیست که شب و روز را جانشین یک شکر قراتاست برای که آنها که بخواهند متذکر شبان یا شو گذاری کنند و و يمشون و اذا قالوا بندگان خاص خداوند رحمان آنها هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می رفند. هنگامی که جاهلا انها را مخاطب سازند بانها سلام میگو یعنی وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمًا اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا <تصفيق> آنها کسانی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می آنها کسانی هستند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کردند که عذابش سخت و پردوامه آن بر جایگاه و به محل وَالَّذِينَ إِذَا انفقوا وَلَمْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اصراف میکنند و نه بلکه در میان این حد دارند لَا يدعون مَعَ الله قلون نفسا لکی حضم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلق اتاما آنها کسانی هستند که معبود دیگری را با خدا بند و انسانی را که خدا خونش را حرام شمرده جز به حق بقت نمی رسانند بس نا نمی کند به هرکس چونین کند مجازاتش را خواهد دید يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا چون کسی عذاب او در قیامت مجازات می‌گردد و با خاوری همیشه در آن خواهد ماند الا من تاب و امن و عمل عمل الله حسنات و الله غفورا مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می کند خدا آمر زندب و خداوند آمرزنده وو مهربان است ومن تاب تابع عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا و کسی که توبه کند و عمل صالح بجا جا آبرد به سوی خدا بازگشت میکند و با پاداش خود را از او میگیرد والذین لا يشهدون الزور و مروا مرضو باللو مرضو کراما آنها کسانی هستند که شهادت به با باطل نمی و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگ بارانه از آن می گذرند آنها کسانی هستند که هرگاه آیات پروردگارشان به آنها گوزد شود کر و کور رو آن نمی افتند والذین يقولون ربنا هل لنا من ازواجنا اماما. آنها کسانی هستند که میگویند هر بار از همسران با فرزندان ما موج ی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران بنما. قُلَائكَ آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبایی ایشان به آنان پاداش داده می شود و در آن با سعادت و سلام روبرو می شوند. خالدی نکیها حسنت مستقرا و مقاما در آن خواهند ماند چه قرارگاهی خوب بس چه محل اقامت جالبه قل ما یعبعو بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما بگو پروردگار من برای شما ارج قایل نیست اگر دعای شما نباشد شما تکذیب کردید و دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد